عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس بخشی از بررسی مقدماتی کتاب مقدس هست که از پیدایش تا مکاشفه ادامه پیدا می‌کنه. هدف از بررسی مقدماتی کتاب مقدس اینه که یک شمای کلی از کتاب مقدس قبل از مطالعه تک تک کتاب کتاب مقدس به شما بده. خوشحالیم که شما تصمیم گرفتید ع در این دوره بررسی کتاب مقدس باشین که خیلی ها اون رو به عنوان بهترین و مهیج کتاب دنیا میشناسند. بیاید با هم به درس امروز معلممون گوش کنیم. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. در این جلسه میخوام مقدمه اولین انجیل از اناجیل انجیل متا را با هم شروع کنیم. در بررسی انجیل متا، دو مطلب هست که ازتون میخوام به دنبال اونها بگردید اولیش اینه به راهکار ایسا در انجیل متا توجه کنید در مقدمه عهد جدید و اناجیل گفتم که ایسا مردی بود که معموریت داشت او واقعا میدونست که معموریتش چیه و اون معموریت رو به کمال به انجام رسند در انجیل متا میبینید که عیسی نه تنها مردی بود که معموریت و رویایی داشت و میدونست که اون معموریت چی بود بلکه او مردی بود که برای اجرای اون معموریت راهکار داشت. برای دیدن راهکار عیسی در انجیل متا ملاحظه کنید که چند بار متا به ما میگه که ایسا چشمان خود را برافراشت ایسا چشمان خود را برافراشت و به جمعیت انبوهی که مشکلات زیادی داشتن نگاه کرد و دلش به حال آن جماعت سوخت. بر اساس انجیل متا هر بار که او به جمعیت نگاه میکنه، کاری راه راهبردی میکنه. اولین باری که این کار رو میکنه در انتهای باب چهارم انجیل متی هست. عیسی در حال خدمت به هزاران نفر در تپه های اطراف دریای جلیل بود. وقتی عیسی به این جماعت نگاه کرد، هر مشکل قابل تصوری رو در اونها دید. ما در فرهنگ امروزی خودمون بیمارهامون رو در بخش های مختلف بستری میکنیم. ما اونها رو در بیمارستان های روانی، آسایشگاههای های معلولین جنگی بیمارستان‌های بیماری‌های واگیردار و حتی آسایشگاه سالمندان بستری می‌کنیم در فرهنگ امروزی این مردم دور از دید هستند و گاهی فراموش شده وقتی عیسی به این جمعیت در زمان خودش نگاه می‌کرد تمامی اون مشکلات و بیماران در معرض دید بودند ما میخونیم که عیسی اونقدر دلش به حال اونها میسوخت که گریه می‌کرد در زبان یونانی میگه که وقتی او مشکلات این جمعیت انبوه رو می‌دید گریه می کرد و تمامی بدن او با حقهق گریه هاش می لرزید. اولین باری که شما این راهکار عیسی رو می بینید در پایان متا چهار هست ما می خونیم که وقتی عیسی جمعیت رو می بینه بالای تپهی نزدیک دریای جلیل میره ره جایی که گفته میشه شه ایسا سر کوهش رو در اونجا بیان کرده این کوهشی به ملایمی به طرف دریای جلیل داشت در مرقس سیزده میگه. عیسی به کوهی برآمد و آنان را که خواست به حضور خیش فراخان و آنها نزدش آمدند. ما میتونیم به این اولین گرده همایی مسیحیان بگیم. وقتی ایسا کسانی ای رو که دعوت کرده بود گرده هم آورد او به اونها تعلیمی داد که در متا 5 شش و هفت میبینیم که بهش معزه سر کوه و یا یکی از بزرگترین سخنرانی های ایسا میگیم. هدف از تعلیم معزه سر کوه دقیقا این بود ایسا داشت به کسانی که دعوتشون کرده بود تا در اون گرد همایی شرکت کنند نشون میداد که اونها میتونند بخشی از راه حل او برای مشکلاتی باشند که در پایین کوه دیده میشد. او به اونها نشون داد که چطور میتونند بخشی از چاره او برای همه اونها باشه. بنابراین وقتی ما عیسا رو میبینیم که اولین بار به جمعیت نگاه میکنه و اولین گرد همایی مسیحی رو ترتیب میده با چالشی مواجه میشیم. چالش دقیقاً اینه. شما کجا هستید بسیاری از تعالیم عیسی دو نوع مردم رو به تصویر میکشه اول کسانی رو میبینید که بخشی از مشکل هستند مثل کسانی که در اون جمعیت بودن وقتی میبینیم عیسی رو به گروهی میکنه که به اونها شاگردان میگه و میبینیم که اونها رو تعلیم میده که بخشی از راه حل ها و جوابهای او برای اون مشکلات باشند. نوع دیگری از مردم رو میبینیم کسانی که بخشی از راه حل هستند شما هم با این چالش مواجه هستید آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل آیا شما بخشی از جواب هستید یا خود شما هم علامت سؤال دیگری هستید وقتی عیسی اولین گرد همایی مسیحیان رو ترتیب میده او کاری کاملا راهبردی میکنه او جمعیتی رو می بینه که نماینده نیازهای دنیا هستند بعد رو به کسانی میکنه که به اونها شاگردان میگه و شروع میکنه به تربیت اون شاگردان که بخشی از راه حل و جواب او برای نیازهای دنیا باشن. اگر شما سه سال فرصت داشتید و این رو میدونستید و میخواستید خواستید که پیامتون به تمام دنیا برسه چی کار می کردید؟ عیسی سه سال فرصت داشت و این رو می دونست. عیسی می خواست که پیامش به تمام دنیا برسه. پس او چی کار کرد؟ اگر شما بخواید یک مجری موثر باشید و مدیریت اجرایی بخونید به شما گفته خواهد شد برای یک مجری فعال بودن، باید پنج گام بردارید. اون پنج گام بارتند از اینها. تجزیه و تحلیل، سازماندهی، نمایندگی دادن، نظارت کردن و تلاش کردن. اگر بخواهید که یک مجری موثر و فعال باشید، اول وضعیت رو تجزیه تحلیل می کنید. بعد کارتون رو سازماندهی می کنید. بعدن اگر واقعا مجری خوبی باشید به مردم در کار خودتون نمایندگی میدید و مسئولیت رو به اونها محول میکنید اگر کار دادن نمایندگی رو با موفقیت به انجام نرسونید همیشه مجبور خواهید بود هر کاری رو خودتون انجام بدید اگر به دیگران نیابت بدید میتونید به گام بعدی بدید که نظارت کردنه. فقط با تلاش نمیتونید وارد بشید و به روش خودتون انجام بدید شما تلاش می کنید و اجازه میدید که اونها به اشتباهاتشون ادامه بدن اما اگر اون پنج گام رو با موفقیت بردارید میتونید خودتون رو از کار عملی بیرون بکشید یک بار کارتونی رو دیدم که یک مدیر در حال جارو کشیدن بود عنوان کارتون این بود او یاد نگرفته که کارهاش رو به دیگران بسپاره. وقتی راهکار عیسی رو در انجیل متا بینید، می بینید که ایسا میدونه چطور اختیارش رو به دیگران محول کنه وقتی ایسا جمعیت رو دید او تمامی نیازهای اونها رو تجزیه تحلیل کرد بعد اولین گرده همایی مسیحیان رو ترتیب داد که در نوع خودش کلیسای نوپایی بود کلیسا گروهی از مردم هست که دور ایسا جمع میشن، چون میخوان که بخشی از راهحلها و بخشی از جوابهای او برای مشکلات دنیا باشه. این روشیه که ما باید کلیسای ایسای مسیح رو در این دنیا نشون بدیم حالا در ارتباط با ترتیب دادن کلیسا که در اصل یک تشکیلات خدمتی بود، ایسا برخی از مردم را از بین اون جمعیت انتخاب کرد که در اولین گردهمایی همایی مسیحیان شرکت کنند. بعد ایسا سه سال در کار اون افراد نظارت کرد و بعد از اون اونها رو رها کرد و به آسمان سعود کرد. ایسا کلیسای خودش رو دو هزار سال پیش سازماندهی کرده. این راهکار ایسا رو در انجیل ملاحظه کنید اولین باری که ایسا جمعیت رو می بینه، او تجزیه تحلیل میکنه و سازماندهی میکنه وقتی ایسا تعالیم خودش رو در متا پنج و شش و هفت به پایان میبره او تعالیمش رو در معرض قضاوت دیگران قرار میده ایسا کسانی رو که در اون اولین گرد همایی مسیحیان شرکت کرده بودند به چالش میکشه که وفاداریشون رو به او اعلام کنند ایسا از اونها میپرسه آیا شما جز گروه کثیر هستید یا جز معدود افراد؟ به عبارت دیگه آیا شما جز گروه کسیری هستید که فکر می بخشی از راه حل بودن کار آسونی هست و یا جز تعداد اندکی هستید که می دونند هیچ راه آسونی وجود نداره که بتونند بخشی از راه حل و جواب مشکلات باشن؟ آیا شما جز یکی از افراد دروغگو هستید یا صادق؟ آیا شما شاگرد قلابی خواهید بود یا مایلید که واقعا شاگرد معتبری باشید؟ آیا شما جز کسانی جز که حرف میزنند یا کسانی که عمل می کنند آیا شما مرد عمل خواهید بود یا فقط کسی خواهید بود که صحبت های مذهبی میکنه عیسی میدونست چطور مردم رو به چالش بکشه ما نمیدونیم چند نفر در اون اولین گرده همایی مسیحیان حضور داشتند اما وقتی او بالاخره به جایی رسید که تعالیمش رو در معرض قضاوت قرار داد فقط دوازده نفر باقی موندند فقط دوازده نفر بودند که گفتند ما میخواهیم جز معدود کسان باشیم ما میخواهیم صادق باشیم ما میخواهیم جزء کنندگان باشیم در آیات بعدی عیسی این افراد رو تعیین میکنه و از اون دوازده نفر رسولان میسازه در انجیل متا میخونیم دفعه بعد که عیسی نگاه میکنه و جمعیت رو میبینه در باب نه و شش هست عیسی نگاه میکنه و جمعیت رو میبینه او تازه از بالای کوه و از اولین گرده همایی مسیحیان بازگشته وقتی او نگاه میکنه و جمعیت رو میبینه این بار رو به دوازده نفری میکنه که گفتند ما میخواهیم بخشی از راه ال باشیم ایسا به اونها ماموریت میده که رسولان باشن به این معنی که کسی رو میفرسته یا یک چیزی مثل ماموریت عیسی حالا تجزیه تحلیل کرده سازماندهی کرده و حالا نیابت میده عیسی مسیح مردی بود که ماموریت داشت او برای اجرای ماموریتش راهکاری داشت در جلسه گذشته ما راهکارهای عیسی رو اونطور که در اناجیل شرط داده شده ملاحظه کردیم ما فهمیدیم که هر بار به انبوه جمعیت نگاه میکنه دلش برای اونها میسوزه بنابراین کاری راهبردی بردی میکنه در بابهای 14 و 15 انجیل متا ما دو مورد رو میخونیم که عیسی نگاه میکنه و جمعیت انبوهی رو میبینه و دلش برای اونها میسوزه اونها به سرعت در صفای طولانی به دنبال می میومدن در هر دوی این موارد عیسی دوباره کاری راه راهبردی میکنه در باب چهارده معجزهٔ بزرگ عیسی ثبت شده که ما به اون خوراک دادن به پنج هزار نفر میگید این تنها معجزهایه که در هر چهار انجیل ثبت شده اولین باری که عیسی به جمعیت خوراک داد او به پنج هزار نفر و خانوادهشون غذا داد بار دوم عیسی به چهار هزار مرد و به خانوادهشون غذا داد در یکی از تفسیرهایی که من خوندم اینطور میگه دلیل اهمیت این موجزات و اینکه برای ما تکرار شده اند اینه که اونها چیزی بیش از موجزه هستند. اونها موجزه هستند، اما ما همینطور مسائلی از نگرش عیسی از مأموریت رو به ما میدن. این موجزات به ما نمونه ای از راهکارهای عیسی در مأموریت رو میدن یا راهکار او برای دسترسی به دنیا. وقتی عیسی در اولین مورد به جمعیت نگاه میکنه، اونها نشان دهنده دنیا هستند. به علاوه تمامی مشکلات دیگر اون جمعیت اونها افراد گرسنه‌ای هستند رسولان نزد عیسی میاند و میگن این مردم چیزی برای خوردن ندارن. اونها رو برگردون عیسی میگه اونها رو بر نگردونید بهشون غذا بدید برید ببینید چند تا قرصنام دارید چیزی بسیار راهبردی اینجا اتفاق میفته عیسی استراتژی خودش رو برای دستیابی به دنیا به تصویر میکشه عیسی به رسولان خودش این وظیفه رو میده که بین اون جمعیت و نیازهای اون جمعیت قرار بگیرن ایسا میخواد که تمامی تمهیدات و تدارکات او برای نیازهای جمعیت توسط رسولان به دست اونها برسه ایسا نمیخواد که خودش شخصا نیازهای مردم رو با دست خودش به اونها بده بلکه میخواد توسط دستان رسولان به دست مردم برسه میخوام به این فکر کنی آیا ایمان دارید که معجزات خوراک دادن به پنج هزار نفر و چهار هزار نفر صرفا معجزاتی هستند که در هر چهار انجیل ثبت شدهاند و در انجیل متا تکرار شدن چون این معجزات نشاندهنده دیدگاه و راهکار عیسی در مورد معموریتش برای دسترسی به دنیای گم شده با مجده نجاتش بود؟ وقتی که به سوال من فکر می کنید، یادتون باشه که اغلب تکرارها در کتاب مقدس برای تأکید بر اهمیت مطلبی هست کتاب مقدس داستان آفرینش رو تکرار میکنه شریعت خدا توسط موسی رو تکرار میکنه تاریخ قوم خدا از سال هزار قبل از میلاد تا سال 500 قبل از میلاد رو تکرار میکنه چون پادشاهی خدا موضوع مهمی هست زندگی نامی مسیح چهار بار تکرار شده داستان موجزاسای خوراک دادن به 5000 هزار نفر و چهار هزار نفر در انجیل متا تکرار شده اگر شما با محققی که این عقیده رو داره موافق هستید از خودتون بپرسید آیا ایسای زنده و قیام کرده میخواد که همون کار رو توسط شما و در زندگی امروز شما انجام بده؟ منظورم اینه آیا هدیه نجات عیسی مسیح برای این دنیا از دستان او توسط دستان شما به این دنیا انتقال پیدا میکنه؟ این راهکار او بود و امروز هم راهکارش همونه از خدا بخواهید که امروز و هر روز شما رو به کار بگیره که بعد اطرافیانتون غذای روحانی بدید به این موجزات که در اناجیل آمده فکر کنید در مورد اول پنج هزار مرد اونجا بودن و چهار هزار نفر در مورد دوم به علاوه زنان و بچه های احتمالی یعنی بذارید بگیم که در باب پنج هزار نفر بودند که به همراه خانواده هاشون احتمالاً بیست هزار نفر می شدن اگه تا حالا در کار تأمین خوراک برای مردم بوده باشید باید از خودتون بپرسید چقدر نان و ماهی لازم بود تا بیست هزار نفر رو سیر کنه آیا فکر میکنید که عیسی این همه نان و ماهی رو توی دستش تا اونجا حمل کرده بود؟ یا فکر میکنید دوازده نفر میتونستن این همه نان و ماهی رو توی دستاشون تا اونجا حمل کنن؟ واضحه که این معجزه وقتی نان و ماهی از دست ایسا به دست دوازده نفر و از دست آنها به دست مردم رد می شد اتفاق افتاد. این رو فراموش نکنید. عیسی گفت اونها رو بر نگردونید. به اونها خوراک بدید. چقدر غذا دارید؟ بعد آندریاس پسر بچه کوچکی رو پیدا کرد که برای نهار فقط پنج گرد نان کوچک و دو تکه ماهی کوچک داشت. آندریاس اون پسر بچه و نهارش رو نزد عیسی میاره و میگه پسر بچه ای رو پیدا کردم که نهارش رو با خودش آورده. اما این مقدار به کجای این مردم میرسه عیسی نهار پسر بچه رو میگیره و اون رو برکت میده نان رو پاره میکنه و به دست دوازده نفر میده و دوازده نفر اونها را به جمعیت میدن حالا موجزه تکثیر کی تکثیر به وقوع پیوست وقتی رسولان با ایمان قضای اون پسر بچه رو بین مردم تقسیم کردند که احتمالاً هزار نفر بودند به اعتقاد من این زمانی بود که معجزه به وقوع پیوست این معجزه مانند مجزه تبدیل آب به شراب توسط ایسا هست. اون موجزه در باب دوم یوحنا ثبت شده. ایسا و مادرش در جشن عروسی مهمان بودند وقتی شراب تموم شد، مادرش به ایسا گفت شراب اونها تموم شده. به نظر می رسید که به او میفهمون که باید کاری انجام بده. ایسا طوری رفتار کرد که هیچ کاری انجام نخواهد داد. اما مادرش رو به خدمتکاران میکنه و میگه، هرچی او به شما میگه همون کار رو بکنید. خمره های بزرگ 80 تا ده لیتری خالی در اونجا بود. و عیسی به خدمتکاران میگه این خمره های بزرگ رو از آب پر کنید. وقتی خدمتکاران از پر کردن آب به خمره ها فارغ میشن، عیسی میگه حالا شراب رو بین مهمون ها تقسیم کنید. اون خدمتکاران احتمالاً با خودشون میگفتن: بله درسته، منظور همین آبیه که الان در خمره ها ریختیم. به نظر میرسه که عیسی اونها رو تشویق میکرد که شما پخش کنید و آب تبدیل به شراب خواهد شد. وقتی خدمتکاران شراب رو بین مردم پخش کردند، مردم نزد میزبان اومدند و گفتند: وقتی مردم میهمانی میدن، اونها معمولا اول شراب ناب رو به مردم میدن و بعد وقتی همه مس شدند، شراب ارزون رو میارند. اما شما شراب خوب رو برای آخر نگه داشتی. این بهترین شرابیه که تا حالا خوردیم اون معجزه بزرگی بود اما کی اون معجزه به وقوع پیوست کی آب تبدیل به شراب شد وقتی خدمتکاران با ایمان اطاعت کردند و آب رو بین مردم توضیح کردند اونها باور کردند و نان و ماهی کی تکسیر شدند وقتی رسولان با ایمان باور کردند که اون پنج گرد گردنان کوچک و دو ماهی کوچک میتونن هزاران نفر رو سیر کنن معجزه وقتی به وقوع پیوست که اونها با ایمان اطاعت کردند راهکار عیسی که به طور تمثیلی در این موجزه بزرگ به تصویر کشیده شده اینه. عیسی مسیح به عنوان ناجی جهان وارد این دنیا شد. عیسی در یوحنا باب سه به عالم یهودی میگه که او تنها نجات دهنده خدا هست. تنها راه حل خدا و یگان پسر خدا هست. ایسا میخواد این راه حل که خودش هست، این نجات که خود او هست، توسط شاگردان و توسط کلیسا به دنیای گم شده انتقال پیدا کنه. یعنی توسط کسانی مثل من و شما عیسی میتونه به هر طریقی که میخواد اون جمعیت رو قضا بده. چرا او اون قضا رو توسط دستهای اون دوازده نفر به جمعیت داد؟ چون او سعی میکنه به ما نشون بده وقتی میگه من قصد دارم نیازهای دنیا رو توسط کلیسام و توسط قومم رفت کنم منظورش چیه؟ عیسی تجزیه تحلیل کرده، عیسی سازماندهی کرده، عیسی نیابت داده؟ و حالا او نظارت میکنه عیسی در حالی که تمامی تدارکات او از دستان او به دستان شاگردانش میرسه و توسط اونها به مردم نیازمند و دردمند این دنیا میرسه نظارت میکنه مشاهده کنید که چطور این الگوی زیبا در انجیل مطا پدیدار میشه و در باب 28 با چیزی که ما بهش معموریت بزرگ میگیم به اوج خودش میرسه ایسا سه سال تمام سعی میکرده که این نکته رو به رسولان تفهیم کنه. رسولان باید به طور هدفمند بین عیسی و جمعیت و تمامی نیازهای اونها قرار می گرفتند. تمامی چیزهایی که عیسی برای مردم تدارک دیده بود، باید از طریق اونها به مردم انتقال یافت. عیسی وقتی در انتهای انجیل متا معموریت بزرگ رو به رسولان میده، موکدتا این راهکار رو به اونها تعلیم میداده. عیسی وقتی شاگردان رو جمع کرد و به اونها گفت که در جلیل او رو ملاقات کنند، مصلوب شده و از مردگان قیام کرده بود قبل از مصلوب شدنش عیسی به اونها گفته بود شما را در جلیل خواهم دید اگر میدونستید که کشته خواهید شد آیا نقشه ملاقات با کسی رو ترح می کردید عیسی گفت شما را در جلیل ملاقات خواهم کرد شاگردان وقتی شنیدند که او قیام کرده حرفهای او رو به خاطر آوردند پانصد نفر از شاگردان در جلیل گرد آمدند و عیسی مأموریت بزرگش رو به اونها داد یازده شاگرد عیسیا به جلیل به کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید رفتن. وقتی آنها عیسی را دیدن او را پرستش کردند هرچند که بعضی در شک بودن. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. هر چهار انجیل با این معموریت بزرگ به پایان رسیده. کتاب اعمال رسولان که کتاب تاریخ کلیسا هست با این معموریت بزرگ شروع شده. کتاب اعمال رسولان به ما نشون میده که این معموریت بزرگی بود چون در این کتاب دقیقا اجرای این معموریت بزرگ ثبت شده. کتاب اعمال به ما میگه که رسولان تا به اقصانقات دنیا رفتند. اونها شاگردان ساختند، شاگردان رو تعمید دادن و هر چیزی رو که عیسی به اونها تعلیم داده بود به شاگردان تعلیم دادن. دنیا در حیرت فرو رفت و هر کسی فهمید که عیسی با اونها هست. در روز پنتیکاس که کلیسا با عجایب و نشانه ها پا به عرصه هستینه ها پتروس گفت آیا میدونید چه کسی تمامی این کارها را انجام میده؟ همون عیسی که شما او را بر صلیب کشیدی، پسر خدا که از مردگان قیام کرد و حالا او در دست راست پدر نشسته و او عامل انجام تمامی این وقایه است. ببینید عیسی نظارت میکرد و به خاطر کلیسای خودش زجر میکشید. هنوز هم زجر میکشه. وقتی تاریخ کلیسا رو بخونید، میفهمید که او هر بار چطور به خاطر کلیسای خودش عذاب میکشید. کلیسای او تحت جفا بود فکر کنید وقتی کلیسای او در جفا بود او چطور زجر کشید. اگر تمامی اطلاعات رو جمع وری کنید خواهید فهمید که کلیساهای او امروزه هم در بسیاری از نقاط دنیا در جفا هستند فکر کنید وقتی کلیسا اون چیزی که باید باشه نیست عیسی چطور تقلا کنه. من فکر می کنم یکی از چیزهایی که باعث میشه او زجر بکشه سطحی و کم عمق بودن کلیسا هاست. وقتی راهکار ایسا رو درک کنید، می فهمید که ایسا در نظر داره کلیساش سازمانی خدمتی باشه. وقتی امروزه به بسیاری از کلیساها از بعد راهکارهای عیسی نگاه می کنید، متوجه می شید که چرا ایسا رنج می کشه. چون امروزه در قرن بیست و یکم، کلیسای مسیح اون چیزی که باید باشه نیست. ویلیام بود که بنیانگذار ارتش نجات بخش بود، خدمت مؤثری در محلات کسیف لندن داشت. وقتی جنرال بوت نزد مردم می رفت به اونها لقب می داد. او نزد پیرزنی رفت و به او لقب سالی ناسزاگو داد و دلیلش واضح بود. وقتی سالی ناسزاغو تبدیل شد از او خواسته شد که در میتینگ های خیابانی تبل بزرگ بزنه. سه هفته تمام هر شب پشت سر هم سالی در میتینگ های خیابانی تبل بزرگ می زد. وقتی به هفته چهار رسیدن سالی هنوز هم تبلش رو می زد. اما به نظر میرسید کمی افسرده هست. ژنرال فکر کرد که باید کاری کنه تا روحیه او رو تقویت کنه. پس وقتی نوبت مؤزه به او رسید گفت ای جماعت شما همه سالی ناسازاگو رو میشناسید و میدونید که چطور به مسیحی ما آورده و عیسی رو شناخته. میخوام از او دعوت کنم جلو بیاد و به ما بگه عیسی برای او چه مفهومی داره. او رو صدا کرد. سالی بیا اینجا و به ما بگو عیسی برای تو چه مفهومی داره. خب سالی قبلا این کار نکرده بود. او صدای طبلش رو بلند کرد و گفت همه شما مردم قبل از اینکه من مسیحی بشم منو میشناختی. من توی بارها میرخسیدم و ولگردی میکردم. مشروب میخوردم و خیلی فوش میدادم. به این دلیل به من سالی ناس از آگو میگرد. اما من به شما میگم. از وقتی عیسی رو ملاقات کردم بعد تقریبا کمی اخم میکرد و گفت من فقط اون گوشه میستم و صدای دارامدارام تبل رو در میارم و به تبل فوش داد واضح بود که ژنرال به سرعت جلسه رو تموم کرد او تصمیم گرفت که قبل از اینکه از مردم بخواد چیزی بگن اونارو راهنمایی کنه داستان سالی کفرگو این طور با قلب من صحبت کرد مسیحی شدن چه مفهومی داره ایماندار به عیسی مسیح بودن یا شاگرد عیسی مسیح بودن چه مفهومی داره یکی از راه حل‌ها و یکی از جواب‌های مسیح بودن چه مفهومی داره آیا مفهومش اینه که یه ای بیسید و تبل بزنی وقتی کسی مسیحی میشه باید با اونها چیکار کنیم باید یه طبل بزرگ به دست اونها بدیم و بگیم بگیر و این طبل رو بزن آیا مفهوم زندگی مسیحی اینه راهکار عیسی مسیح در انجیل متا به ما نشون میده که مفهوم مسیحی بودن چیه به طور خلاصه باید بگم وقتی انجیل متا رو میخونید دنبال راهکارهای عیسیاب گردید شما راهکارهای ایسا رو میتونید در پایان باب چهار ببینید اونجا که عیسیاب جمعیت نگاه میکنه و بعد اولین گرده همایی رو ترتیب میده ما زمان بیشتری رو برای بررسی مطالب اولین گرده همایی مسیحیان اختصاص خواهیم داد بابهای 5 و شش و 7 متا شامل تعالیمی هست که عیسیاب جمعیت تازه کارش میده ایسا خدمتش رو با یک گرده همایی شروع میکنه و با یک گرده همایی دیگه به پایان می‌بره. در نتیجه اولین گرده همایی مسیحی، عیسی دوازده رسول رو به خدمت می‌گیره و اونها رو با پیام خوش به پیش می‌فرسته. عیسی سه سال زمان خدمت عمومیش رو با این دوازده مرد سپری کرد. عیسی وقتی رو در اختیار این دوازده مرد گذاشت و اونها رو تا آخرین گرده همایی مسیحیان نگه داشت. مفات آخرین گرده همایی مسیحیان در باب‌های سیزده، چهارده و پانزده یوحنا ثبت شده. به بین گفتگوها گفتگوی بالاخانه گفته میشه این طولانی ترین گفتگوهای ثبت شده از عیسی است ملاحظه میکنید هر بار که عیسی نیازهای دنیا رو در جمعیت میدید رو به رسولان میکرد و به تعالیمش تاکید بیشتری میکرد چون اونها راه حلها و جوابهای او برای این دنیا بودند اگر مفهوم این الگو رو درک کنید اون وقت راهکار عیسی را هم درک خواهید کرد دفعه بعد که عیسی به جمعیت نگاه میکنه کنه، و اون دوازده نفر ماموریت میده که رسولان او باشند و شروع به تعلیم اونها میکنه و اونها رو به دنیا میفرسته شما میتونید تونید رابطه ایسا عیسی با رسولانش رو با گفتن این خلاصه کنید. اونها رو تعلیم داد، و اونها نشون داد و اونها رو رهبری کرد. این رو در سرتاسر سه سال خدمت عمومی عیسی ملاحظه می کنید. ماموریت اصلی او تعلیم دادن به این دوازده نفر بود. دو بار وقتی ایسا به جمعیت نگاه میکنه او پنج هزار نفر و چهار هزار نفر رو خوراک میده. گمانم امیسا به ما میگه ببینید اگر میخواهید راه حل من و جواب من باشید باید به طور استراتژیک بین من و تمامی اون چیزهایی که من قصد دارم برای رفع نیازهای این دنیای نیازمند بدم و مردمان این دنیای نیازمند قرار بگیرید. قصد من اینه که راه های من برای مشکلات دنیا از طریق شما به اونها برسه این راهکار عیسی در باب 28 انجیل به اوج خودش میرسه عیسی بعد از اینکه شاگردان رو به مدت سه سال تعلیم میده و راهکارهاش رو به اونها نشون میده به 500 نفر از اونها میگه حالا راه حل به شما داده شده من راه حل هستم تمامی قدرتی که نیاز دارم به من داده شده بنابراین آیا اون دنیای بیرون رو میبینید؟ به دنیا برید؟ و از اون دنیا شاگردان بسازید و اون شاگردان رو تعمید بدید و هر چیزی که من به شما تعلیم دادم به اونها هم تعلیم بدید. و نباید بترسید چون که من تا انقضای عالم همیشه با شما خواهم بود. این راه حل من و جواب منه. شما جواب من و راه حل من هستید. حالا من از شما میپرسم. آیا بخشی از راه حلو برای گرسنگی روحانی این دنیا هستید؟ و یا خود شما بخشی از مشکلات هستید؟ اگر هنوز بخشی از مشکلات هستید و به لحاظ روحانی گرست عیسی ایسا میخواد به شما خوراک بده و به شما برکت بده تا اینکه بخشی از راه حل او باشید امروز به حضور او بیایید دوستان آیا حقیقت شگه انگیزی نیست؟ بله خدا میخواد ما رو به کار بگیره و به وسیله ما به دیگران برکت بده آیا تا کنون به کسی بشارت انجیل رو دادید؟ آیا از کسی دعوت کردید که در این کلاس ها شرکت کنن؟ اگر نکردید آیا این هفته این کار خواهید کرد؟ همونطور که در درس امروز یاد گرفتید سوال واقعی اینه آیا شما بخشی از را حل هستید یا بخشی از مشکل؟ دعای ما و آرزوی ما اینه که خدا شما رو با قوت برای جلال نام خودش به کار بگیره تا برنامه بعدی امیدواریم شما با محبت او دلگرم بشید و جسارت پیدا کنید که فیض او رو این هفته حداقل با یک نفر در میون بذارید